باتل اسکندریه شعبان 650 بیشک دیگر زنده نیست خیلی وقت است مرده اما هر جا که میروم چشمهایش با من است مثل دو سنگ سیاه و شوم آویخته از آسمان می میکند امیدوار بودم با دور شدن از قونیه با فرار کردن به دور دستها از شر این خاطره که مثل مته مغزم را سوراخ می‌کند خلاص شوم. هنوز هم فریادش در مغزم می‌پیچد. همان صدایی که پیش از کشیده شدن خون صورتش در آمدن چشمهایش از چشم خانه و بسته شدن دهانش پس از کشیدن آخرین دم از هنجره برآورد، صدایی همانند زوزه گرگی در طله افتاده فریاد الوداع آدمی خنجر خورده. وقتی کسی را بکشی حتم بدان که چیزهایی از او به تو سرایت می تصویری، بویی، نفسی آهی، لعنتی صدایی من بهش میگویم نفرین مقتول به بدنت می چسبت و میماند شروع میکند به کندن انگار که بخواهد بدنت را سوراخ کند و رد شود تا وقتی که به اعماق قلبت نفوذ کند آنجا که رسید جا خوش میکند و دوباره در تو زنده می شود. به خوابت می آید و رؤیاهایت را تکه پاره می کند. روز را هر طوری هست سر می کنی. اما همین که شب شد و تنها ماندی در رخت خوابت عرق سرد میریزی. ریزی. همه ها در وجود قاتلان به زندگی ادامه می دهند. از هنگامی که قابیل ها بیل را کشت، هیچ قاتلی نتوانسته از کشیدن بار امانت قربانیش رها شود. کسانی که در کوچه بهشان برمیخورم اصلا نمیتوانند این را حدس بزنند، اما از هر آدمی که تا امروز جانش را گرفتم، نشانی با خود دارم. مثل گردن آویزهای نامرئی از گردنم آویختند. تنگ هم با همه سنگینیشان. زندگی کردن با این بار آسان نیست. حتی بعضی وقتها نفس نمیتوانی بکشی. این طوریست دیگر. رنج و بدبختی آدم کشتن به هیچ چیز نمیماند. عذاب علیم است: اما می شود گفت که دیگر عادت کردم مثل بخشی از زندگیم قبولش کردم آرامشم را بر هم نمی زند یا اینکه زمانی اینطور فکر می کردم اما این آخرین جنایت چطور شد که این قدر تکانم داد؟ این دفعه همه چیز از همان اول با های دیگر فرق داشت مثلا اینکه کار را چطور پیدا کردم یا اینکه باید بگویم کار چطور مرا پیدا کرد سال 645 آخرهای پاییز بود در قونیه قلچماق آدمی مخنس بودم که خانهای بدنام داشت و خشم و قذبش معروف بود. وظیفه هم زهر چشم گرفتن از روزپی ها بود و حد و حدود مشتریها را بهشان فهماندن و اگر لازم می ترساندن چشم اینان انگار همین دیروز بود. دنبال یک فراری بودم. روزپیی که از خانه مخنس فرار کرده بود. بدبخت یک دفعه به سرش زده بود آب توبه به سرش بریزد و عابد و زاهد بشود چه غلطها؟ دختر قشنگی بود حیف بود کمی دلم برایش میسوخت چون اگر پیدایش میکردم صورتش را چنان از ریخت میانداختم که دیگر هیچ مردی نتواند نگاهش کند چیزی نمانده بود دختر احمق را که لقبش کل کویر بود گیر بیندازم اما ای اسرارآمیز به دستم رسید نامهای غیرمنتظره که توجهم را به سوی دیگر کشاند و فکرم را به خود مشغول کرد زیرش امضا شده بود نگهبانان ایمان در نامه نوشته بودند خوب میدانیم که تو کی هستی در گذشته فدایی اسماعیلی بودی پس از مرگ حسن صبا و دستگیر و زندانی شدن رهبران طریقت دیگر نتوانستید به اوزا سر و سامان بدهید نتوانستید مثل سابق مجموع بمانید برای آنکه گیر نیفتی به قونیه فرار کردی در اینجا مخفی شدی و برای خودت نامی جدید و کاری تازه پیدا کردی. الان برایت کاری داریم که انگار جامعه‌ای است به قامت تو دوخته شده. در نامه نوشته بودند که برای موضوعی بسیار مهم به خدماتم نیاز دارند. اطمینان میدادند که پاداش خوبی در انتظارم است. اگر پیشنهاد نظرم را جلب می کرد، پس از نماز مغرب باید به میخانهای مشهور می رفتم. محل ملاقات آنجا بود. قرار بود پشت نزدیکترین میز به پنجره، پشت به در بنشینم، سرم را پایین بیندازم و به کف خاکی میخانه نگاه کنم و چشم از آنجا برندارم. کمی بعد آدمی که قرار بود استخدامم کند یا آدم‌هایی که قرار بود استخدامم کنند پیشم می آمدند. نه موقع آمدنشان اجازه داشتم سرم را بلند کنم و به صورتشان نگاه کنم نه موقع رفتنشان و نه هنگام صحبت من. نامه عجیبی بود. اهمیتی بهش ندادم. عادت داشتم به ادا و اتوار مشتریها. در این سالها آدمهای جور و جوری استخدامم کرده بودند. تقریبا همشان میخواستند می‌خواستند ناشناس بمانند. به تجربه ثابت شده مشتری هرقدر بیشتر اصرار بکند که هویتش ناشناس بماند، همانقدر به مختول نزدیکتر است. این قاعده کلی را می‌دانستم، اما به من ربطی نداشت، کار من معلوم بود، کشتن، به بهشت و دوزخش کاری نداشتم. از وقتی قلعه علموت را ترک کرده بودم، زندگیم بر این منوال می گشت. راستش کمتر سؤال می کردم. اصلاً برای چه باید سؤال می تنها چیزی که میدانستم این بود که توی این دنیا برای هر آدمی حداقل یک نفر هست که میخواهد سر به تنش نباشه اینکه دست به جنایت زدهاند به این معنا نیست که روزی قصد جان یکی را نخواهند کرد ممکن است این گناه عذاابور را در دفتر اعمالشان ننوشته باشند اما معنیش این نیست که چون این هوا و هوسی در دل ندارند. راستش را بخواهید برای همه بدون استثناء لحظه می رسد که می توانند یکی را بکشند. اما این را اکثر آدمها نمیدانند نمی, دانند. نمی خواهند بپذیرند. تا وقتی حادثهی غیرمنتظره باعث شود خون جلوی چشمشان را بگیرد چقدر هم مطمئنند که دستشان هیچ وقت به خون آلوده نمیشود و جان کسی را نمی‌گیرد حال آنکه همه چیز به تصادفی بند است گاهی یک حرکت چشم و ابرو کافی است تا خون کسی به جوش بیاید از کاه کوهی بسازد و سر هیچ و پوچ دعوا و کتکاری راه بیندازد راستش حتی در زمان و مکان اشتباه بودن کافی است برای آنکه حیوان درون آدم های پاک و تمیز و باشرف یک دفعه آشکار شود همه می آدم بکشند اما در این دنیا آدم های کمی می کسی را که اصلاً نمیشناسند با خون سردی بکشند. در اینجاست که من وارد میدان می, می کار را من یک سر می کنم. کارهای کسیف دیگران را انجام می دهم. توی این دنیا به امثال من هم احتیاج هست. مگر خداوند متعال هنگام برپایی نظام مقدسش ازرائیل را در کار جان گرفتن نایب خودش تعیین نکرده است اینطوری انسانها هر بلایی که سرشان بیاید تقصیر ازرائیل می‌دانند میتوانید بگویید ازرائیل عادل است اما راستش این دنیا چندان هم محل ادالت نیست مگر نه؟ به هر حال هوا که تاریک شد به میخانه ای رفتم که در نامه نوشته شده بود. اما داخل که شدم دیدم میز کنار پنجره پر است. مردی که روی صورتش جای زخم شلاق بود پشت میز وارفته بود. میخواستم مردک را بیدار کنم و بگویم گورش را گم کند. اما در آخرین لحظه منصرف شدم معلوم نمی شود ایاش ها چه موقع چه کاری می کنند. برای همین ممکن است کار دست آدم بدهند لازم نبود بی بیجهت توجه دیگران را جلب بکنم برای همین پشت نزدیکترین میز نشستم و رویم را به طرف پنجره برگرداندم منتظر نشستم، خیلی نگذشته بود که دو نفر آمدند، دو طرفم نشستند، ماندم وسطشان، صورتشان را خوب پوشانده بودند تا نبینمشان، اما نیازی نبود صورتشان را ببینم تا بفهمم هر دو چقدر جوان، گیج و قافلند، پیدا بود، آمادگی کاری را که شروع کرده اند ندارند. یکیشان گفت: تعریفتان را زیاد شنیده این. در صدایش نگرانی موج میزد میگویند در این کار رودست ندارید حرفهای جوان به نظرم خندهدار رسیده بود اما جلو خندهام را گرفتم. متوجه شدم که از من می ترسند. این برای من خوب بود. اگر به اندازه کافی می ترسیدند، نمیکردند نمی کردند کلک بزنند. درست شنیده اید. تو این کارها رو دست ندارم. برای همین به من می گویند کل شغال. کار هرچقدر هم مشکل باشد، مشتری ها را ناامید نمی کنم. مرد جوان که انگار تن لرزه هم گرفته بود گفت خب این خیلی خوب است چون کاری که می انجامش بدهی ممکن است چندان آسان نباشد. همان موقع دیگر مرد جوان وارد صحبت شد. یکی هست. مردک بلای جانمان شده. کلی دشمن برای خودش پیدا کرده. از وقتی به این شهر پاگذاشته گذاشته جز فلاکت و بدبختی با خودش نیاورده هیچ خیری از او ندیده ایم. چند بار اختار دادیم اما یک گوشش در بود گوش دیگرش دروازه نه تنها عقل به کلش نیامد بلکه هار بود هارتر شد چاره دیگری برای ما نگذاشته حرفی نزدم راستش همیشه همینطور است مشتریها پیش از دست دادن با من نمیدانم چرا شروع میکنند به توضیح دادن همیشه هم میگویند آدمی که میخواهند کشته شود چقدر پدرسوخته و بیناموس و عوضی است انگار اگر به آنها حق بدهم جرمی که قرار است مرتکب بشویم سبکتر می شود. فهمیدم، خب، این آدم کی هست؟ اینطوری که پرسیدم دست شدند، حرفهای بی سر و ته زدند کافری که به دین و ایمان پشت کرده، سرکشی که کار را به بی و کفر کشانده. درویشی فاسد. آخرین کلمه را که شنیدم، موهای تنم سیخ شد. فکرهای مختلف از ذهنم گذشت. اعصابم به هم ریخت. تا آن روز همه جور آدمی کشته بودم. جوان، پیر، مرد، زن، سالم، علیل و غیره. اما درویش، یعنی کسی که خودش را وقف دین و ایمان کرده بینشان نبود. من هم برای خودم اعتقاداتی داشتم. راستش نمیخواستم غضب خدا را به جان بخرم چون با همه این حرف از خدا می ترسیدم متاسفم آقایان پیشنهادتان را قبول نمی کنم. دلم نمیخواهد دستم به خون درویش آلوده شود کس دیگری برای این کار پیدا کنید پا شدم که بروم اما یکی از جوانها التماسکنان دستم را گرفت. خواهش میکنم جواب رد ندهید. دست مزدتان هرچقدر باشد، حاضریم دو برابرش را بدهیم. یک دفعه تصمیم گرفتم و پرسیدم. اگر سه برابرش را بخواهم آن وقت چه؟ مطمئن بودم نمی توانند همچو دست مزد بالایی بپردازم. اما چیزی که اصلا انتظارش را نداشتم شد. پس از لحظه ای مکس هر دو گفتند پیشنهادم را قبول می کنند. دوباره سر جایم نشستم. مخم داشت سوت می کشید. راستش پول خوبی بود. اگر این قتل را مرتکب می شدم می توانستم سالهای سال راحت زندگی کنم. دیگر لازم نبود نگران پول شیر ها باشم. می توانستم فوری ازدواج بکنم و بدون آنکه فکر نان شبم باشم راحت زندگی کنم. با توجه به وضعیتی که داشتم و پولی که دستم را می گرفت، دیگر برایم درویش و غیر درویش فرقی نمی کرد. جان همه را می توانستم بگیرم. از کجا میدانستم در آن لحظه بزرگترین اشتباه زندگیم را مرتکب شدم و بعدا از پشیمانی آرزوی مرگ میکنم از کجا میدانستم کشتن این درویش چقدر سخت خواهد بود و حتی پس از مرگش نیز تیزی نگاههای همچون خنجرش را بر سینم حس خواهم کرد از زمانی که شمس را در حیات کشده و جسدش را در چاه انداخده ام، پنج سال می‌گذرد. هنوز هم صدای برخورد تنش با آب را نشنیدم. هیچ صدایی از چاه در نیامد. انگار بدن درویش به جای افتادن در آب به عرش سود کرد. از وقتی که مرده یک شبم بدون کابوس نگذشته و هنوز هم هر وقت به چشمی، ای، برکی، حوزی یا هر جای دیگری نگاه میکنم که آب جمع شده وحشتی سرد تمام وجودم را در بر میگیرد. دستهایم میلرزد و حال تهوع پیدا می کنم. هر وقت به یاد شب می گفتم، دلا میشوم و بالا میآورم انگار بخواهم هرچه در درونم انباشته شده از بدنم خارج کنم خارج کنم و خلاص شوم دستهایم پاهایم شده پوست و استخان. چه شگفتانگیز او مرده اما هنوز زندگی میکند من اما هر روز میمیرم و boss me